خلاصه روش برانگیختن تفکر مؤثر مرور مختصر خاک اول تفکر خود را بنا کن امیق یاد بگیر یک مطالب ساده را امیق بفهمید دو دوریختن مطالب آشفته و پیگیری مطالب اساسی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 توصیف منسجم، دقیق و مفصل ارائه بدهید یا دانش شما نقصهایی دارد. آیا هنگام تفکر درباره های پایه دچار مشکل می‌شوید؟ آیا می‌توانید کل موقعیت را که در آن قطعات کنار هم قرار می‌گیرند ببینید؟ پس از کشف ضعف‌های خود در فهم مبانی، اقدام کنید. مبانی را به طور روشمند یاد بگیرید. این تمرین را هنگام یادگیری جنبه های پیشرفته موضوع به طور منظم تکرار کنید هر بار با به مبانی فهم شما از کل موضوع عمیق تر می شود اهمیت مسائل کوچک مسئلهی پیچیده را در مطالعات یا زندگی خود در نظر بگیرید به جای پرداختن به کلیت آن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 تنها پس از این مرحله میفهمید که تلاش شما چگونه به حل مسئله بزرگتر کمک میکند کشف یک مطلب اساسی تصور کنید میخواهید مطلبی را بفهمید و آشفتگی ها را بزدایید تا جزء اصلی را جدا کنید هر مطلب پیچیده ای چند ایده محوری دارد شما به دنبال ایده منحصر به فرد نیستید شما تنها یک ایده می‌خواهید. مطلبی را در نظر بگیرید و آن را به یک مضمون تقلیل دهید. در واقع چه بسا این تمرین را در مورد خودتان امتحان کنید. به نظر شما اجزای اصلی خود شما چیست؟ جدا کردن اجزا می‌تواند به تمرکز فراوان در تصمیمات زندگی منتهی شود. آنطور که می‌بینی شرح بده سؤالات تکالیف آزمونها و عرضیابی شغلی درباره دانستههای شماست متاسفانه اعتبار نسبی یا فشار اجتماعی قالبن شما را به تظاهر به بیش از آنچه واقعا انجام می تحریک می بنابراین در خلوت اتاق خود به تکالیف یا سؤالات احتمالی آزمون نگاه کنید و ضعفها و قوت های ها و نادانسته ها را یادداشت کنید به طور سنجیده از سرپوش نهادن بر خلع یا ابهام اجتناب کنید به جای آن جسورانه به قسمتهای نیمبند یا ناقص فهم خود تاکید کنید اکنون خفره ها را پر کنید تشخیص و اقرار به عدم قطعیتها ها گامی بزرگ به سوی فهم قاطع و استوار است گزینه ها را بیازمایید و گزینه مناسب را بسنجید. موقتاً دیدگاهی را بپذیرید که با آن اعتقاد ندارید. بکوشید پیش‌داوری نکنید. در برابر دیدگاه‌های رقیب تعصب نورزید. در حال حاضر قصد تغییر ندارید. هدف این تمرین فهم واقع‌گرایانه‌تر دیدگاه‌های دیگر است.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 آتش دوم از خطاها به بینشها موفق نشو یک به گامهای نادرست و تصادفی خوش آمد بگویید یا اشتباهات را راهنمای خود قرار دهید دو یافتن سؤال درست جواب نادرست سه شکست از روی عمد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 خطر کنید و هنگام شکست دیگر فکر نکنید که اه نشد چه اطلاف وقت و انرژی ناامید ای بلکه از گام نادرست خود بینش تازه ای حاصل کنید و به درستی فکر کنید که محشر است، یک شکست اما نه فرصت دیگر برای ادامه کار دارم پس پیشرفت می کنم و در واقع همینطور است پس از شکست اول به خود بگویید عالیه ده درصد کار رو انجام دادم اشتباه، باخت و شکست همه مانند چراغ قوه آشکارا راه فهم عمیق‌تر و راه حل‌های خلاقانه‌تر را به شما نشان می‌دهد. به صفحه سفید خیره نشو. مسئله‌ای را در نظر بگیرید. حالا به سرعت هر ایده‌ای درباره ای مسئله دارید، خوب، بعد نادقیق یا مبهم، تایپ کنید. ایده های شما از جهات متعدد بسیار بد است آنها نامنظم و به هم ریختند نادقیق یا صرفا اشتباهند غیرعملی و دلسرد کننده اند. به حل مسئله نزدیک نمیشوند و مبتکرانه نیستند تبریک می گوییم. آغاز فقالاده است اکنون نوشته خود را بخوانید و بر دو جنبه تمرکز کنید یعنی چه چیز درست؟ و چه چیز نادرست است؟ اکنون کاری هست که انجام بدهید یعنی می میتوانید اجزای مفید را استخراج کنید چه بسا گزاره یا ایده های خوب و قوی پیدا کنید چه بسا واجه ای را به زبان آورید که نشانه مفهوم زمنی جالبی باشد چه بسا به این مطلب پی ببرید که جزء اصلی ایده ای که در حال بیان آن هستید برای شما روشن است وظیفه دوم تشخیص و بهرهبرداری برداری از خطاها و اصلاح خطاهای مشاهده شده است شما اکنون کاری متفاوت انجام می دهید. در واقع اثری روی بوم خالی خلق نمی کنید بلکه به اثر از پیش موجود واکنش نشان می دهید. باید مطمئن شوید برای تکرارهای مورد نیاز زمان کافی دارید روز بعد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 در خطاهایتان اقراق کنید. ای را در نظر بگیرید و در جنبه ای از آن تا حد ممکن مبالغه کنید. اگر از دیدگاهی خاص استدلال می از آن دیدگاه که واقعا به آن اعتقاد دارید حمایت کنید. استدلال را چنان بزرگ جلوه دهید که به افراط برسد. اکنون شرح اقراق آمیز خود را بررسی و ضعف بنیادی آن را پیدا کنید. آیا ضعف در دیدگاه بدون اقراق اصلی شما هم وجود دارد؟ مانند آزمایش تنش می از این تمرین در مورد آنچه خوب کار می کند استفاده کنید و ببینید چگونه به هم می ریزد. از راهبرد برد مبالغه می توان در مورد هر مسئله از قبیل نوشتن، بازاریابی، گسترش محصول و سیاست استفاده کرد. مثلا شرکت های بزرگ هکرها را به خدمت می‌گیرند تا سیستم های شرکت را حک و زحف های امنیتی را شناسایی کنند. هوا سوم، خلق سؤال از هوا یا سقرات خود باش یک جوابها چگونه به پرسش ها می‌شود؟ شود؟ دو خلق سوال کنجکاوی شما را تقویت می کند. سه. سوال درست چیست؟ درس بدهید تا یاد بگیرید برای یادگیری هر مطلبی هیچ راهی بهتر از تدریس آن نیست. زیرا برای تدریس باید با سوالات بنیادی فراوان مواجه شوید. برای مثال انگیزش یادگیری این مطلب چیست؟ مثال پایه کدام است؟ بر چه جنبه از مطلب تمرکز کنم؟ مزامین بنیادی کدامند؟ چه چیز ایدهها را به هم مرتبط می کند؟ ساختار کلی چیست؟ جزئیات مهم کدام است؟ این پرسش ها شما را به کشف اصل موضوع و مشاهده دقیق آنچه واقعا می فهمید و آنچه هنوز باید بیاموزید راهنمایی می کند. بنابراین ایده یا مطلبی را در نظر بگیرید که میخواهید بهتر بفهمید و فهرسی از سوالات بنیادی تهیه کنید که به شما برای توضیح کامل کمک کند از جمله انگیزش، مثالها، مرور و جزئیات مطلب سپس یک درس کوتاه آماده کنید و آن را به مخاطب، مانند خانواده، دوستان یا حتی معلم ارائه دهید سوال را اصلاح کنید. از دیدگاه دانش آموز سوال چگونه می توانم نمرات بهتر بگیرم، موثرترین راه کسب نمرات بهتر نیست سوالاتی از قبیل چگونه میتوانم تفکر بهتر و فهم میقتر را بیاموزم یا چگونه می توانم بهتر ارتباط برقرار کنم؟ یا چگونه میتوانم کنج کافتر باشم بسیار سازنده تر است. برای آن دسته از سوالات زیر که مناسب شماست و مهمتر از همه سوالاتی است که خود شما طرح کنید، سوالات واضحتری طرح تر کنید که شما را به نتایج بهتر برساند. سوالاتی طرح کنید که های نهفته را آشکار کند، به مباحث وضوح بخشد و به عمل منتهی شود. سوالات خود را نقد کنید. فارو سوال بپرسید.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 فهم ایده های فعلی از طریق جریان ایده ها. دو، خلق ایده های نو از ایده های کهنه. ایده ها را تکرار کنید. برای پرداختن به یک مسئله به ارتش هزار نفره نیاز ندارید. تنها کسی که باید جزء به جزء به جلو پیش برود شمایید. به سراغ تکلیف، مقاله یا پروژه بروید و آن را به سرعت انجام دهید.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 ما تحت تأثیر دانسته های سابق خود به محدودیت دچار می شویم به ویژه به دلیل آگاهی از سودمندی آنها اما اجتناب از پیشداوری می تواند به جواب های نو و آن نیز خود به بینش های تازه و جواب های مؤثرتر منتهی شود بپرسید آنها به چه فکر می کنند کدام باورها عادات فرهنگی، دیدگاه یا کنش های پذیرفته شده امروزی به نظر نوه ما احمقانه به نظر خواهد آمد. برخی از نمونه های احتمالی چیست؟ قرنها پیش بردداری از نگاه انسان های محترم عملی طبیعی و اخلاقی بود. کدام اعمال خوب امروز در آینده به منزله اعمال شرماور نکوهش خواهد شد؟ انصر <سؤال> ناب <سؤال> پنجم، تغییر خوشایند خود را دگرگون کنید تغییر کارشناسانه اگر در حال یادگیری موضوع، حل مسئله یا تقویت مهارتی هستید به فعالیت فرد ماهرتر با جزئیات بیشتر فکر کنید یا به این مطلب که فرد ماهر چه دانش و فهم عمیق و تجربه بیشتری در کار خود به کار میبرد به عبارت دیگر کار متفاوتی را توصیف کنید که فرد خبره در مقایسه با کار فعلی شما انجام می دهد. به جای اندیشیدن به اینکه قرار است کار دشوارتری انجام دهید که به تمرکز و تلاش بیشتری نیاز دارد، چون این فکر کنید که چه دانش، مهارت یا راهبردی انجام دادن آن کار را ساده تر می کند. خود ناب شما، چهار رکن اول به شما امکان میدهد از آنچه هستید بهتر فکر کنید از آنچه هستید بهتر یاد بگیرید و از آنچه هستید خلاقتر باشید رکن پنجم به شما توصیه کند واقعا این کار را انجام بدهید فقط انجام بدهید به ارتقا خواه با استفاده از چهار رکن ما یا با هر روش دیگر عادت کنید اگر توانایی تغییر بخشی از خود را داشته باشید، از نگرانی درباره ضعرف یا نقصها ها رها می شوید. زیرا می توانید هر وقت که بخواهید انتخاب کنید و بهتر شوید برای فهم استوار تلاش کنید: خاک) شکست را بپذیرید و از گامهای نادرست درس بگیرید آتش هموار سوالات چالش برانگیز خلق کنید و بپرسید هوا آگاهان جریان ایده ها را در نظر بگیرید آب و البته به یاد داشته باشید که یادگیری سفری ماداول عمر است. بنابراین هر یک از ما اثری در حال پیشرفت همواره در حال تغییر و تحول باقی میماند و این سبک زندگی ناب است.